صدای چیه میاد دینامیت بمبه شایتی من انگار بمبه اکنی های چکره صدای شیشه میره از اونش نه این صدای وبسایت سایت پلگر بیارش بارم سلام بچه ها حالتون چطور؟ چه؟ امیدوارم که خوب و خوش و سرحال شاید شما خوال بکنید که من چی است؟ راسته من, من کسی هستم که من, هستم که من بچه های خوب بتونه خونه رو دوست داره امیدوارم که خوش مدبارم و سرحال باشید Salam khalay. مرام سلام می کنم به تمام شنوندگان صدای پلیروان قسمت دوم. دو مرسی که قسمت اول رو باورش شدید که کنیم کنار همی که یک چکر بسیار خیلی, خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوبی از بازیه این پادکست داشتیم. این قسمت خبر داره و طنز برای همینی که ما لوس شدین و باز join کردو همجوری با ما باشی، خبرارو گوش بدید و قسمت طنز رو حتماً و حتماً و گوش بدید. این قسمت خواهیم رفت دنبال این که چرا فضای مجازی جدیداً لوس شده سر این کنسول وار و, و به این بررسی خواهیم رسید که گیمر بچه یا بیبی یا بیبی گرم آها مولی بابا مولی بی من این تا خویش رو بخو زبونت باشه اینکه برگر خوردن عادت آمیانه بخو شد یه اعترافی اضافش بده تا خویش اعتراف بخو ماری باشه عادت از دامنش بروم اصلا اون بیبی گیمر یا برای نفس بکشم برو بین یا بیبی گیمر کلان کیس و چیکار است؟ اصلا سنش چقدره؟ اصلا واقعا بیبی بچه است؟ نو چیه؟ و اینکه اصلا چرا ادامه فعالیت میده این آدم؟ چرا این آدم اصلا گیمره؟ چرا کنسولوار؟ چرا؟ پس جایی نرید و همینجا آمان باشید میریم که خبرها گوش بریم از موزیکال زد ببرید و آمیدوارم که این تنز یک درس عبرتی برای یک سری از روستان بشه دارم دوست داره کسی هستم که از دیدن غبار غم روی شاداب و شاد کسی هستم که فکر کردم که قصه ها و خوبترین قصه ها رو برای شنوا به دل‌های پاک همیشه توجه توجه فیلم گفتم شامل صحنه‌های بسیار دلخراش و خشنی است امیدوارم کسایی که به این صحنه حساسیتی دارند حساسیتشون رود نکنه اون امو رو راستی بیار بالا امو آره امو امو خوشگل به خوشگل اینجوری بیارش که بریم خبری بعدش چی یه ماشاءالله بابا کشتی و ما در وقت خبره این هفته میریم سراغ پنج خبر برتر و مهم این هفته و بعد یک سری از تیترها رو شروع میکنیم و هم دیگه خوندن و مروی کردن طبق معمول همیشه و یک کامنتگی همچنین ریزی و یک سری نظر بزره و این هفته که روش داریم هم همچنان میدیم روش و امیدوارم که از خبرها این هفته هم لذت ببریم اکتیویژن اعلام کرده که دیلسی هایی که برای بلاکاب سری میادهش به صورت انحساری روی پی اس فور قرار میگیره همون موقع دوران بی تیری 2015 و سر کنفرانس سونیا این حفا حالا این خبره اومده گفته که نه اکتیویژن اعلام کرده که به صورت رسمی این دیلسی ها فقط مدت سی روز روی پی 4 فور انحساری هن. یعنی آدم واقعا نمیدونه چی بگی نه که حالا بگم این و این حرف ولی تو کف این کار اکتیویژن هم یه بار باد از این وری میاد دقیقا میدو میره این ور. یه بار از این وری میاد دقیقا میره میدو اون ور حالا این سریه مثل اینکه باد داره تو این نس همچین خیلی خوب میاد از طرف سونی و دیگه چسبیله به سونی و فلش شد بگذاری خیلی من میخوام ویچی نگم لامسته بابا یه تغییری یه چیزی که هر سال همون در شیش مایه بار همون نه نه منظورم بابا نبوده سری پیش تو قسمت یک ولی اینم همون جوری هر شیش مایه بار همون جدا واقعا همون هم فروش میکنه جدن خیلی هم حال میکنه هر شیش مایه بار یه پولی میزنه بره بابا یه تغییری بده چهار تا گیمر خوب جدید بیان به اضافه بشن بیخیر بابا پلاست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 خبر رو اینه که والمارت این یعنی اسپر مارکتای تو امریکا و این هاپ اینه که همین چیه خوشه قیمت گذاشته روی یه دونه باندل ایکس باکس وان با یه دونه کنترلر الیت همون کنترلر روسیه مشکی که یه ذره خش شده و نمیدونم حالت گیمینگ پیدا کردن هاپ ها بعد گفته که این قیمتش 500 دلار حالا هیچ ان تغییر نشده هنوز همونجوری فقط در حد همین رو نمای کردن قیمت و این هاپ ها لو رفتن و نمیدونم اشتباهه حالا هرچت مایکروسافت هم هیچ حفی دوبارهش هنوز نزده خود این دسته 150 تا یعنی حالا بغیاشو رو کنسول حالا برای هم همین فکر میکنن که بعد کنسول هم یه تغییری داده شده و همشه ش عوض شده و این حفا حالا باید دید که بینیم چی میشه ولی با 500 دلار ه نام از یه قیمت که میذاری و سری کللا با هر قیمت هایی که هر سری دیگه میذارن تو یه 200 می کشی روش صد تا 500 کم تا. کمه کم دیگه نه هیچی نکشی روش بکنید چلت های میکشی روش رو بگذریم این میگذاریم ازش این هم میگذاریم ولی فقط به احترام گمر پایین. یه پنج ثانیه همچنین سکوت میکنید شما که اترامی نمیذارید علاقه ما که اینجا یه جز خیلی کوچی کسان شما جز هم حساب نشید علاقه یه پنج ثانیه برای کسایی که بوجه پایین دارن و گیمرن سکوت میکنید هیچی هم نمیدید. دواره انحساری ماکروسافت یعنی انحساری که انحساری نبود ولی شد و حالا فده هم اون معلوم نیست بله منظورم توم ریدر هست خواهدگاه رو رفتن از کارگردان هنری این بازی سوال کردن گفتن که داستان چی آقا برنامه چی برای این بازی و و ایشون هم در کمال آرامش و آرامی جوابی دادم که لایق تشویقه و اشم گفتن که متاسفانه نمیتونم اطلاعاتی دوره ارزای یا عدم ارزای بازی بر روی پلاتفورم های دیگه بدن هم نمیخوام نمیخوام بگم مال خودم نمیگم و جا که همتا که گفتم اشته تشویق کنیم به خاطر اطلاعات زیادی که دادم طیعه و ویتین هستش. که این خبر خوشی داریم واسه شما که یابدی جدید دارن. بعد دیگه میتونه این بازی فول اسکرین بازی کنه. اینجوری بوده که بالا پایینش نوار سیاهی بود بعد اینجا نمیشه که دلیلش برای این بوده که مثلا به گیمر یا حالت فیلم سینمایی مثلا یه جذب فیلم سینمایی میدن بدن. ولی خب زیاد موفق نبودن مثلا که ناراضی زیاد داشته البته باید گفتش که این بازی دو سال 9 3 مهر 9 یعنی چند ماهه ماه بوده, بوده حالا جریدا به این که یابدی ای شام البته سر دوشوری کجوال هم نوشته که اضافه شده بعد که این کجوال اضافه شده خب یه سر مهمات و یه سری نزدن فکرهای سلامتی اینجا نمیشته به اصطلاح دریافت میکنید بیشتر از حالت آتی وفق کنم که بتونید که حالت کجوال رو روی رو فکرسگیریم بکنین کجوال Show me, show me, show me, how you do that trick The one that makes me scream, she said The one that makes me laugh, she said Through her arms, around my neck. Show me how you do it and I don't promise you I promise I'll run away with you I'll run away with you I'm going wild for the night Fuck beautiful night you تنوز عرق پراژیک کار وان خوش نشده پراژیک کار تو معرفی شده <تصفيق> باید گفتش که این خبر رو گذاشتن بدشن رو گفتم ولی براتون بگم که بگفت که نظر حال کنید و اگرم طرفتار بازی هستید که حال کنید اگرم طرفتار ناراضی بازی هستید که ذره حرص بخورید من حال کنم گفتن که تنها یک ماه از اعضای بازی محافظه پروژه کار میگذارد که خبر از ساخت نسخه بازی. یعنی نسخه دوم هم بازی راست همون تو خطر برای ایکس ps4 pc اس تیم او از به گوش میرسه دیگه واقعا گفتن که حالا یه سری‌ها خیلی ناراحتن سر این قضیه چون که هنوز پراجکاج کار داره و نمیدونم یه ذره تغییرات هنوز لازم داره ولی خب حالا توش همینه یعنی پراجکاج کار تو داره میاد بعد خیلی دیگه در کل ناراضی هستن قابل توجه یه سر دوستان که فکر می‌کنم مردم هیچ وقت ناراضی نیستن و تنتون بازی میدن و کلن به فکر ولکام بیک. آره در کل ولی خب از اون استدیو ماد گفته که بابا ناراحت نمشین هوای پروژه کار وان هم داریم تا پایان سال یه سری براتون همچین دی و اکستنشن و این ها میدیم و بازی کنن اونجوری که شما دوست دارینش حالا بگذاریم از پروژه کار 2 براتون بگم این کار مسابقه دادن در مسیرهای برفی، شن و ماسه و در کل مسابقات آفرود. اضافه شدن هش جدید مانند رالی و ب دوستازمون نوشتن تپه ولی خب در اصل منظورشون تپه بوده تپه هاش نه نی اضافه شدن بخش کوه بازی که شما میتونید در حالت های مختلف از قبیله راهنگه تیمی کمک کننده مصری ها و فیلزی ها فیلزی ها ولی خب قابل بازی است 250 جاده و 50 مکان مختلف در بازی گنجانده شده است وجود بیش از 200 اتومبیل در سی کلاس مختلف بعدیم هاینش هم گفتن که اگه 50 پوند بدید این واقعیه این واقعی اگه پنجاه پوند برای ساخت بازی کومکایی نسخه پیسی و همراه والپیپر و نشانهای داخل بازی به رایگان در اختیار مردم قرار مید اگه هفتر و پنج پوند بدین حالا برای مورد که گفتم پوستر و موسیقی داخل بازی به حتی قابلیت انخواه پلاتفون بازی را نیز دارید جالب اینجاست که نمشتن که اگه هفتر و پنج پوند بدین اسمه داری در لیست سازنده های بازی هم قرار اگه هم بدین. نهانا ولی شو هلی خودم یه های سوی شده پنج تا خبری که قرار بود ما دوبارهش توزی ببیم و میرم تو طریق داستان جدیدی که قراره به برشت خبری خبریا گفتمش یعنی خوندن سرتیترا و و خب میتوزیه خیلی کوچیکی خیلی خیلی کوچیکی دادن دربارهشون دا این سر دراگ هم میگم میتونید برید تو سایت پلیر وان ببینید همشون قشنگ نوشته شدن از طریق نویسنده ها و کسایی که برشت خبری خبریا کنترل میکنن کلا بچهای تینه تغییریه و برید اونجا ببینید کاملش رو بخونید و لذت ببرید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 سرتیدی که الان روی سایت قرار گرفته همین الان که مدام درمزد میکنم اینه که پاسخ راکستری این به مشکلات نسخه پی سی در بازی بتمن آرکام نای کرمتان رو عصمی ترک کرد. همونطور که میدونید این بازی سری افتفریم و این حفه داشته فاید پاسخ راکستری داده گفته که همینی که هست و خیلی مزقره است این حفه و اگه خیلی مشکل داریم نگذاریمشون میدیوم. <تصفيق> جای اندیشن برای اکس باکس وان منتشه خواهد شد این بازی خوب یه سر خوب دکنم طرفتار زیاد داره مثلا تو این کامیونیتی ایران که آدم نظام کنیم این این این که باقای طرفتار و با همه پیگیره این انگه یه سر این خلاق اسفان رو چجوری رد کنم و خلاق کنه این خلاق آیتم رو که طرفتار این اکس باکس وان لذت ببنه No yeah. no yeah. بیژن همکنون آماده است و میتونی این کار بکنه تا اگر از مدت این خواهر زیاد نگذشته باشه و خبر الان مال 3 تیر هست ساعت 10 و 17 دقیقه امیدوارم که دوستان که علاقه دارم بتونم برن سبتنام کنن و و بتاشون رو زودتر بگیرن. فرزا موتور سفورد سیکس برای اکس باکس ما با منتشر میشه گفته میشه که این یک اکس باکس آبی رنگ داره و حالت مثلا ریسینگه خب بالاخره یه تم آبی رنگ و اینا داره این کنسول و بعد که روشنش میکنیم یک صدای موتور ماشین از خودش در میکنه و <تصفيق> امریکین آماده پیش این باید DLC ها هم گفته شده که از طریق این سیستم جدیدی که برای ایکس باکس وان توی e معرفی شد قابل اجرا هستن یعنی DLC های بازی ایکس باکس 60 روی ایکس باکس وان هم تا که میذاریم مثلا که چند تا فقط تایتل میتونه روی این سیستم اجرا بشه در حال حاضر و گفته میشه که DLC های این تایتل ها هم قابل اجرا هستن روی ایکس باکس وان چه در هفته جدید دو دی جدید دریافت میکنه دوستانی که طرفدار این بازی هستن امیدوارم که بتونن این دی اس رو دانلود کنن و به خاطر مججنی هم تا که میدونید این دی ها همشون ارور میشن است سی دی پروژه ر که در قسمت 1 توضیح دادیم ما کلی ازش از فزتکر کردیم تشکر باوقرینه این گیدی دستنکی از منتظر این دیاسی‌ها باشین و استفاده حتما بکنید یه تحلیل کنفرانس سونی دارین رو سایت کنفرانس ای‌تی‌دی رو به صورت کامل و بخش بخش براتون تحلیل کردن دوستان و همین الان میتونید به روی سایتو بخونینش و, و لذت ببرید یکم فرات طولانی مثلا همه تحلیل‌ها و نقد و بررسی‌ها که سایت داره ولی خب در کل چیز کاملیه امیدوارم که بتونید بخونین و لذت ببرید تیتر دیگه نمیشه شده که آزادی عمل فالات 4 از وضعی جتی الهام گرفته شده و اینو من قبل هم خونده بودم آقای تاگ هاوارد میسن که اومده و خیلی قشنگ خیلی محترمانه و زیبا کلی از جیتی 5 تعریف کرده و تمجید کرده و گفته بابا دمتون گرم خیلی خفنید و تا کلی هم تعجب کرده گفته که چجوری همچین چیزی ساختن و آزار عمل فلان و بسار و خیلی خفن خیلی خال کرده و, و بعدش آخرش گفته که ما الهام گرفته از جیتی وی 5 هم که میدونید توی ایتری 2015 معرفی شده و نقل بررسی بتا سام فکر کنم دو سایک آره بله حالا گرفته ما میتونیم برید بده خونمون بس نه بود. بازی فالاسفور با رزولوشن 1080 پیکسل و نرخ فریم 30 اجرا میشه رو همه چی رو همه کنسول ها فعلا چیز دیگه توضیح داده نشده. خب حالا با واستم ببینیم که چه جوریه دوستان. منم رو واقعا ندارم که حالا بگن که رو کدوم کنسول چیشی و فلان و اینا فرض. ماظرا که واقعا بریم ببینیم چه چه تغییرهایی حالا روش اجرا میشه. حالا خب اگه تغییر اجرا نشه، ولی خب بالاخره چیزایی که آدريه جیدنتو گیم اون 35 بکنم زیاد کس شوکپرايز نشه یه تحلیل کانفرانس مايكروسافت هم, هم داریم روی وبسایت دوستان نوشتن و خیلی طولانیه و ولی خب خیلی کامل و فخشمش باشه حتماً همه چی توزی شده مثل اون تحلیل‌های کانفرانسهای دیگامو برام امیدوارم که دوستان مايكروسافت و اکس باکس هم برام بتون بخونن و لذت ببرن و تکوخالی بکنن دیگه بهتره که برای خیلی طولانی نشه بریم سابقه بخش بدی چون که واقعا خوب چیزی که فکر کنم همتون این نگاه می‌کنید و چک می‌کنید با که دراتون مورد استفاده این بش قرار گرفتش بریم یه برنامه ببینیم و این برنامه قسمت که خیلی خیلی اش تبلیغ شده بوده از طرف من و قسمت تنز برل بار در وبسایت پ داریم این سراغ تنز پادکست و دوستانی که اگر آشنا باشن با سری کار من چون قبلا من کار میکردم این بخش تنز خیلی بخش معروفی شده بود و جنگ جنگمین می شده خاطرش. ولی خب قبل از که شروع بکنیم همین هم قسمت تنز دیگر باید بگینی که تو این حاضگست ما کاملا بیطرفیم و بیشتر پشت مردم هستیم و پشت گینره هستیم تا پشت کنسول یا پشت یک برن باقی تمام تنسایی که درست میشه کاملا بیترفن و حالا برید بگیم خب اینجور دستانم بکنیم بلو حالا یه برنامه ببینیم. یه برنامه ببینیم یه برنامه ببینیم Hi, on, so I'm living on the on are you doing in this game? What you صحیح بیت علی رو تو چی نگفته بودم آره منخه زبان این بچه ها رو می‌دون نگفته بودم جاله فکر کردم دیگه تو الان گفتم آه تو این جوش نه یه چیزی بشتش نوشته چی لطفا شیر ندهی تا خرخره خورده است بجاش براش یه دست باتلفیلد بذاریم روی ایکس باکس 1 و یه 4 5 دستم افتی تی بازی رو پی 4 اوردر و وارفرافت رو خب چه جالب چه جالب شیر نمیخواد ولی به جاش بازی میخوریم بچه اما ای اول کلیم کنسولا میخوای بازی کنیم دبیش شخص جاتر فوشت میدی خواب اصلا اول بگو پیسی دیگه چرا اینجوری چی؟ پیسی بهتره؟ با کی حالا حرف بیزد باشه بهتره چی مکره؟ چی؟ خودت خودتی بابا ده بابا بابا این بچه کیه مامان این بچه این بچه مال کی هستن تو مال کسینی اون دستینه کلامو نمیگه اون دیو چی بیبی گیمر این با این قدش بیبی گیمر از من دو مت این بیبی گیمر این الان با این سنش با این ریسیویش حالا یه فرقه یه زبان بلد نیست بابا بشی بیبی گیمر من گیمر شدم باشه باشه بهونه همجا هیچ ماش نه نه, نه نه هیچ فرقی شوهر باش تا چه وقت نداری دیگه بس بس پی سی گیمر نمیدونم چه موتی قوتی مونتی بس دیگه اهه هفته ما اولین تازه این پادکست ما بیبی بی گیمره، بیبی بی که دایران بعد از هر سری ایتی دی، بعد از هر سری کنفرانس، بعد از هر سری خبری شروع می کنه تو این سایت ما ایتالو، سوییشال نتورکا و, و نمیدونم این ور اوم ور هر جا دستش میاد شروع می کنه چرت کنه. اما بسه بسه. آخر من نمی‌ام. علی مساله 2005 زین کنسول واره یه چیه؟ شروع کنم. ویدیو گیم چیزیه که برای بخش تفریحات زندگی ما دروجه تفریحات چی اند؟ تفریحات یعنی اگه وقتی که, که خسته داغونی، بعد دیگه حوصله سر رفته میخوای یه خستگی در کنی، باش بره یه چیزی مثلا داشته باشی سرتو گرم کنی باهاش تا این مشکلات روزت یا یادت بره یا مثلا کم بشه. منم مثلا یه تفریح داشته یه دنیای مجازی داشته باشی که از دنیای حقیقیت همشیم بگی نگی مثلا سلام باحالتر بشه بعد اون دنیا مجاز باعث بشه که این دنیای واقعی باحالتر بشه. برای اینه ته تاهه تاهه شرکت کار بالا بری هرکار پایین بیاد اینه ویدیو گیم یعنی هم. یه سریا کنفرانس که میشه نمیدونم. یه خبرش زمین شروع می‌کنه یه شروع می‌کنه تو این سایت‌ها و نمی‌دونم جمعای دور هم شینن و نمی‌دونم یه چک مثلا پیدا می‌کنن می‌تونن حرف بزنن معمولا می‌تونن دهنشون باز کنن شروع می‌کنه آره 80 پیکسل نمی‌دونم فلان نمی‌دونم چندتا تا بالاتر فریمش فلان ادیتش با کنیمポジت و بکن بچه، بابا چیکار داره با این کاراتو برای همین تصمیم گرفتیم که این جور آدما رو بیبی گیمر صدا بزنیم و چند تا دلیل بیاریم که بگیم که کلا کنسول با معنی نمیش. اما این دلایل چجوری چه میگیم اینجوری میگیم میگم دلایلی که خود شما میارین و براتون بازگو میکنیم شاید اینجوری یه ذره متوجه شین که چقدر این چرت میگه فولان کنسول یا فلان بازی یا نداره. یا فلان کنسول یه سری بازیارو بیشتر داره. خب این یه سری که خیلی خیلی خیلی فیکتوری 1900000 رو همینش شده. آره نمی‌دونم کی از فلان کیل زون داره، درایو گارد داره، نمی‌دونم دل اسافاس داره. حالا اون یکی ایکس باکسیا. آقا ما هیلو داریم، هیلو یعنی نمی‌دونم فلان کارگردان اومده ساخته. نمی‌دونم فورزا اسپورت داریم، سیمولاتوره. بعدا دوباره فیکس می‌کنم. نه تعداد شما کمه. خوش. کمتر یکم. اون یکی. نه حالا کارگردان فلان کارگردان نه ایماره بازه سازه نساسه نساسه چه داره آخه حال کردی اگه حال کردی اون یعنی بازی خوب با کن حالا پیسی گیمه باید نگاه این گوتها رو نگاه کنه یعنی که مثلا <تصفح> چه بچه های ناز و گوگولی این بازیار هم رو همتونم رو پیکسل اجرا کنم فورکی فورکی بس به دا داغ این چند سال اخی. 4K می... نه ما 4K خیال بابا حالا باز 4K یه ذره کمتر frame ما frame ما مون نیم راه ما میتونیم که چیکار باش برو بخل. برو قاشم کل پولت رو بده 4K که هیچی one thousand K بگی قاشم بچه تو صورته اون دوتا هم قاشم بهش یه نگاه آگاهان در سفیه بیشتر با که کارتون 4K ده. وایلا بابا <تصفيق> Let's go. دواها اینه که فلان بازی روی شست فریمه جا نشده پس نیکس جن نیست یعنی نیکس جنریشن نیست یعنی نسل جدید نیست این یعنی یک بازی که همینجوری انداختن روش نسل... مگه میشه نه <تصفيق> حالا هیچ این واسه حالا آی جی انو گیم اسپاتو وبسایت های دیگه یا مثلا این که مثلا شخصی انو نمیدونم پیج های فیس این حرفا یا عکس برمی داره میذاره کنار هم دیگه بابا تو این بازی کردی که فرق داره حالا مثلا دو تا عکسم یکی ها مثلا یه زام نوره اون یکی بیشتره نوره یکی کمتره اصلا آقا یکی از این دلایل همین دو تا ویدیو ویدیواست همین عکس ها این ویدیو هایی که اینجا میذارن کنار دلیلش یکی از دلایل همیناست دلیل بعد حالا اینجا سرفتار ایکس باکس اونو بهتر می نذار تصویر کسور اون یکی رو بعد واسه هم دلیل میاروه که نه این تصویر از میگوی تصویر خیلی مواهد داره بعدی که البته زیراد خب ایک باکس وانیا زیاد صحبت نمی کنم بند خدا در بارش اصلا صحبتی هم کلند حالا نهیده بکنم شینه <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> به درد عمت میخوره یعنی دقیقاً جمعه ای که دیدم استفاده کردم آقا هیچ مصرفی نداره هیچ دلیلی نداره وجوده هیچ به درد نمیخوره ولی خب یه سری اصلا باهاش حال میکنه اما که باش حال میکنن یعنی چی یعنی که خب چیز خوبی برای یه سری از افراد قرآنی است هر چیزی که بیرون میاد همه ما باش حال بکنیم دلیل دارید دلیل دارید دلیل دارید وای وای فروش فلان کنسول بیشتر بوده پس اون کنسول بهتریه خدایین باور کن خدایین چه رپتی داره بابا مرد حسابی یه سری اپی کنسول وس یه سری ایکس باکس وان دوست دارن یه سری هم بودجه شو دارن نمی‌دونم مثلا کلا مال مشکلی ندارم پی سی میرم میگیرم توچ یعنی واقعا بتوچه که کدوم بیشتر فروخته کدوم بیشتر نه من کی هر کاری که دوست داره میکنه مثلا مثلا میونه دقیقا موزه کیه اسمش بر نیست مثلا میونه که من از پالو دوست دارم دوست من باقالی پلو دوست داره. یه دوست دیگه هم این وسط دارم که کلاً برنج غذا نمیخوره فقط نونی غذا میخوره. بعد ما ستاپ بچینگ سر برنج و نون و باقالی و عدس. خنده داره نه؟ این هم دقیقا همون موضوعه. دقیقا همون موضوع فقط اسمش فرق داره. چون عدس بیشتر میفروشه دلیل نمیشه که باقالی پلو حال نده. باز همه بدتر چون که این دوتا تا دلیل نمیشه که نونی غذا خوشمزه نباشه. اصلاً بهتون میگم که یعنی واقعا این جور چیزا علاوز شخصیتی سن خیلی پایینه حالا از لحاظ قدی ممکنه بالا باشه ممکنه قلاو نباشه ولی خب علاوز شخصیتی واقعا سن پایینه میخوام امیدوارم که هیچکدومتون بیبی گیمر نباشید همون گیمر خالی باشی یکی که دوست داره انجام بده حالا کسی که فلان غذا رو دوست داره بریز سر اون یکی بگی خب پیتزا وقت نمیفهمی کباب کوبیده <تصفيق> در کله این تا هم که یک بیبی گیمر رو میسازه آنیدونم که وقت بیبی گیمر نباشید و همیشه یک گیمر خالص باشید یا یعنی میاد که یکی سر همین بیبی فنا توی یک زمینه دیگه گریه داشت می‌کرد. الان هم خاصه کارش روی مارسان کشته اون که ما رو حداقل کارمون رو بای مارسان نکشید به دیل نمیخوام کام وای که مادرم نمی به جون نفام نمی کام آخه چه فوتفالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنم به دری ولی گفتن و احانت کردن و باقل این فوتفال من شناخ دارم مردم قیور جلامر مرد خب خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه ما بودید امیدوارم که حداقل تا اینجا ای کار یه لذتی برده باشید از این کار و این بود اولین قسمت رسمی پادکست ما با اینکه دومین قسمت هست اگر نظری پیشنهاد چیزی انتقادی چیزی دارین حتما بگین زیر همین کامنت‌ها و مطمئن باشین که تمام این نظرات و پیشنهادات و انتقادات تاثیر مستقیم دارن روی روند پادکست‌ها. یه بار دوستم تشکر کنم از هم کسایی که سری فیش کارو گوش دادن و عملاً توی سایت و نظر دادن و اونایی که عملاً جای مختلفم رو پیدا کردن و بهم مسج دادن و تشکر کردن و حالا چی. واقعا می‌خواستم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی تشکر کنم ازتون. واقعا طبق این همه بازی دو هیچ وقت نداشتم فکر می‌کردم که دیگه نه دو نفر سیصد نفر باشند پس و پنجشنبه هفته دیگه فعلا خداافظ یا نرس هفته دیگه همینجا هست از بلکه